آیا خوردن قرص جلوگیری در ماه مبارک رمضان به خاطر گرفت نوزه تمام ماه و نعمده آیت ماهیانه برای برزدنها اشکالی داره یا نه؟ نه اشکالی ندارد اگر خانمها ها در ماه مبارک رمضان از های جلوگیری بخورند که عادتهای ماهانه نعاین تا روزها رو کامل بگیرند، این جائز هست این جایز است و روزه ها درستند و روزه ها بعدم قضای ندارند روزه اونها درست ادا شوند علتش چه دلیلی هست حدیثی هست از حضرت عبدالله الله ابن عمر رضی الله تعالی او این دارو رو تجویز کرده برای خانم ها و این ارادی ندارد. پس اینها میتونن روزه اشونو بگیرن این مشکلی شده برای همه اینقدر این سوال پرسیده نمیشه که حالا از حساب رد شده هر روز این سوال میآید. اگر کسی قرص نخورد اشکال ندارد. روز... وقتی خداوند متعال برای اون مجاز کرده روزه رو بخوره اما اگر قرص خورد بعد دیگه هم مشکلی نیست یه ارادی ندارد. و الاتی هست که فزوانی که اون حیض نآید روزه واجب هست از بعد دو ماه نمیان از بعد یک سال هم نمیا علل مشکل اصلی علت همون آمدن همون خون‌ها هستند